فصل دوم مدخل‌ها و پیشینه‌ی بحث مروری بر پجوهش ها برای بررسی خلق و خوی ایرانیان حداقل یازده مدخل مطالعاتی را می‌توان ردگیری کرد اول های متمرکز بر روحیات و خلقیات ایرانیان دوم ریش شناسی رفتار ایرانیان در ساخت اقتصاد و طبقات سوم ریش شناسی رفتار ایرانیان در ساختار دولت و جامعه شناسی تاریخی و سیاسی چهارم منابع تاریخی این قضیه پنجم مباحث مربوط به هویت، قومیت، ملیت و دین در ایران ششم مطالعات مربوط به اسطوره‌ها، آیین‌ها و ادبیات و معارف هفتم جامعه شناسی باورها نگرشها، رفتارها و روانشناسی اجتماعی. هشتم مباحث متمرکز بر سطح خاصی از نگرشها و رفتارها. نهم، مطالعات مسئله شناسی و آسیب شناسی اجتماعی در ایران. دهم، جامعه شناسی شهر و روستا و نهادها وقعشها و سنوف. مثلا جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی جوانان، و جامعه شناسی کار و سرانجام بررسی‌های مربوط به چالش‌های سنت و تجدد نخبگان جدید و تغییرات فرهنگی در ایران اینها هر یک دنیایی است از این یازده مدخل اولی چنان که گفتیم تکنگاری‌هایی است که به طور مستقیم به روحیات ایرانی پرداختند برخی را غیر ایرانیان نوشتند مانند نامه‌های ایرانی اثر منتسکیو که نخستین بار حدود سال 1721 بدون ذکر نام او منتشر شد. شخصیت های تخیلی در این اثر دو مسافر ایرانی در فرانسه به نام ازبک و ریکا که اولی نماینده قشر متمکن سنتی با زنان بسیار در حرمسرا و دیگری نماینده قشر تحصیل کرده کم و بیش کنچکاو در تحولات جدید غربی هستند. مونتسکیو در قالب نام های آنان 138 نامه و نیز از زبان خاجه و زنان حرمسرا بخشی از خلقیات را در جامعه استبداد زده ایرانی توصیف می کند. در این کتاب ایرانی ها با وجود روحیاتی همچون دلیری و سلحشوری اغلب شبیه آن بخش از جامعه فرانسه مانند اشراف و سلسله مراتب کاتولیکی هستند که هنوز پا به پای تحولات قرن هجدهم تغییر نکردند به یک معنا مونتسکیو از این طریق به نقد جامعه فرانسه میپردازد. نمونه دیگر از نوشته های غیر ایرانیان سرگذشت حاجی بابای از جیمز موریه است. وی از رجال انگلستان مقارن سلطنت فتلی شاه قاجار است که چندین سال از اوایل قرن 19 در ایران زیسته و در دهه دوم قرن 19 یعنی نزدیک به دویست سال پیش این رمان را در لندن منتشر کرده است. این رمان از زبان شخصیت اصلی احوال ایرانیان را شرح می دهد. پیشتر کنسول انگلیس آن را ترجمه کرده بود. ترجمه در دسترس از میرزا حبیب است که جذاب ولی بیش از اندازه آزاد است و دقت کافی ندارد. کتاب مشتمل بر هشتاد گفتار است که در آنها روحیات گروه های مختلف اجتماعی با زبان تنز توصیف شده. از جمله در گفتار 19 از قول حکیم باشی خطاب به حاجی بابا آمده که رفتار فرنگی ها با رفتار ما ضد و نقیز است به جای اینکه موی سر را بتراشند و ریش را ول کنند ریش را میتراشند و موی سر را ول میکنند روی چوب و تخته مینشینند و ما روی زمین مینشینیم با کارد و چنگال غذا میخورند ولی ما با دست میخوریم همیشه متحرکند و ما همیشه ساکنیم لباس تنگ میپوشند و ما لباس گشاد نماز نمیکنند و ما روزی پنج وقت نماز می کنیم. نزد آنها اختیار با زن است و نزد ما اختیار با مرد. شراب را حلال می دانند و کم می خورند ولی ما حرام می دانیم و زیاد می خوریم. مرده را با دست تشریح می کنند بدون اینکه بعد از آن قسل میت به آورند. اگر دیدی فرنگی از چیزی که متعلق به توست خوشش آمده مبادا پیشکش بگویی که باخته ای. گفتن تو همان و بردن فرنگی همان در گفتار دهم ده از قول درویش خطاب به حاجی بابا می نویسد حاجی حیف است که با این همه عقل و شعور و خط و ربط قلیان فروشی کنی بیا در سلک رندان وارد شو و به حلقه خاصان داخل شو روزی آنها از ریز خاری خانه دیگران می رسد و احتیاجی به کد یمین و عرق جبین ندارد زندگی ما تایفه، تنبلی بیکاری و تناسایی است و در حقیقت سلطنت سر و حکمرانی بیدقدقه است. خلاصه آنکه مردم زمانه بازیچی دست درویشانند و ما در سایه ضعف نفس و سستی اعتقاد و نادانی و صادلهی آنها زندگی میکنیم و نانشان را میخوریم و به ریششان میخندیم. این آثار تا دوره حاضر از سوی برخی غیر ایرانیان نوشته شده است. خانوم سیو لینیو کتابی دارد با عنوان چهره فرار ایران. ایشان در بخشی از کتاب میگوید مردم ایران مردمی خونگرم و خوش برخورد هستند ولی هرگز خود را به آسانی آشکار نمی‌کنند. مکالمات ایرانیان سرشار از ادب و توأم با شکست نفسی و اظهار تواضع است و البته با ریا و سالوس و دروغ با هم مواجه میشوند همه این کارها را میکنند تا از رنجش و آزردگی خاطر طرف مقابل یا رفتن آبروی خود بپرهیزند برخی دیگر از آثار در این مدخل به دست خود ایرانیان فراهم شده است همچون سیاحتنامه ابراهیم بیک یا بلای تعصب و نتیجه تعصب او زینال آبدین مراقعی یا ابراهیم بیک فرزند یکی از بازرگانان است که در مصر متولد شده و به قصد سیاحت به کشورش ایران آمده است. بیشترین چیزی که دیده بدبختی و نکبت است. به حسرت می گوید از قفلت دولت و تنبلی ملت به اخراج آن گنجهای بیپایان که در دل خاک مملکت شما نهفته است نمی پردازند. کار مولد جمعی را در این سرزمین ضعیف می‌بیند در مملکتی مثل مشهد مقدس که استعداد هر گونه تجارت را دارد ابدا یک کمپانی و شراکت دیده نمی‌شود حال آنکه مردمان صاحب ثروت هم هستند از اینکه هر یک از هموطنانش فقط به فکر خود است تأسف میخورد. ابدا در خیال منافع عمومی و حفظ عزت وطن و شؤون دولت و آبادی مملکت نبودند حاکم و محکوم، آمر و معمور، عالم و جاهل، تاجر و کسبه، همه در فکر خود بودند. شواهدی که دیده او را به این تعمیم یک سر تیره و تار داده است که گویی آنان به تعبیر هابز گرگ همدیگر شدند. به همدیگر امنیت ندارند. در معاملات نیز با همدیگر خیلی با احتیاط حرکت می کنند و همه در آن خیال است که به دیگری پای بزنند. همه ی تدابیرشان به این منحصر است که به کدامین هیله به زیر پای همدیگر سابون مالیده از پای دراندازند و منصب یکدیگر را بگیرند. آنچه به خاطرشان نمیرسد، همانا حب وطن و غیرت ملی است. پیوسته شغلشان منحصر به عیبجویی و تجسس معاملات این و آن است. همه روزه مشغول دامنهادن به راه یکدیگر و چاه کندن برای هم هستند. فرهنگ رشوه دادن و گرفتن جایی برای قانونمندی باقی نگذاشته است. مأموران رشوه گرفته قدقن یا قانون و مقررات را محمل گذاشته و تملق و مبالغات از قصر شاهی تا بقیه فرهنگ و ادبیات و روابط حیاتشان شیوع یافته است. امپراتور آلمان همه ساله صد برابر پادشاه ایران در شکار چرنده و پرنده و درنده به تیر میزند اما اما هیچیک از شعرای آلمان در ستایش تیر و کمان آن قصیده ای نمیسرایند. خلقیات ما ایرانیان، اثر محمد علی جمالزاده، عنوان زبانزد دیگری در میان این آثار است، داستان از این قرار بود که در شماره چهارم مجله مسائل ایران فراخانی برای ارسال مقاله با موضوع خلقیات یک ایرانی امروز صورت گرفت. یکی از مقالات از محمد علی جمالزاده بود که از ژنو به دفتر مجله رسید و خلقیات ما ایرانیان نام داشت که در دو مرحله چاپ شد. علاوه بر این، بر سال 1345 از سوی همان مجله به صورت کتاب درآمد. مجله خاندنی ها نیز در همان دورته طی چند شماره گزیده هایی از آن را چاپ کرد. اینها همه نشان می دهد در زیست جهان ایرانی تا چه حد نسبت به این موضوع یعنی خود را در آینه دیدن و به خلقیات و روحیات خیش اندیشیدن کنجکاوی وجود داشته است. هرچند سیستم های رسمی چندان از این مباحث استقبال نکردند، و حتی حساسیت نیز نشان دادند. جمالزاده در نوشته خود ابتدا به برخی روحیات مثبت شایع میان هموطنان خیش در شهرها و روستاها مانند خونگرمی، عاطفه خوشصحبتی، طبع شاعرانه، مهمان نوازی، دست و دلبازی، آبروداری، روداری، قناعت پیشگی، توکل و از جانگذشتگی پرداخته و سپس سیاق اصلی کلام خیش را که نقد خلقیات بد ما ایرانیان است، با استثهار و استناد به نویسندگان ایرانی در پیش گرفته است. ابن مقفع، امعق بخارایی، وحشی بافقی، نعیم صدهی مصطفی فاتح، ارسلان پویا، قائم مقام فراهانی، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا محمد خان قزوینی، سید حسن تقیزاده، ابراهیم خاجنوری و عارف قزوینی نمونه ای از کسانی هستند که او به آنها استناد کرده است، همچنین به آثار غیر ایرانیان در سفرنامه ها و تاریخنگاری رجوع کرده و در این راستا از ابن خلدون، جیمز موریه، گوته، ولتر، گستاف لوبون، تئودور نولدکه، ادوارد براون، کورنی او شاردن، راولینسون، سر جان ملکوم، گوبینو، هانری مارتین، سر پرسی سایکس، فوریه، ونسان مونتی، ژان لاردکی و هانری گوبلو شاهد زیادی آورده است. دروغ، پنهانکاری، دورویی، تملق، خودپسندی، خرافاتگرایی و فقدان روحیه تحقیق و پیشرفت از جمله خلقیاتی است که توجه جمالزاده را به خود جلب کرده. اینها جزو اولین و قدیمی قدیمی‌ترین ها هستند. کتاب سازگاری ایرانی مهتی بازرگان و جزوه کوچک و فصل الهاقی به روح ملتها اثر آندره آندر فرانسوی از پیشروترین روترین نمونه های این گونه آثار از نسل دوره پهلوی بود که در دهه چهل منتشر شد و از جرگه همین مدخل نخستین به شمار می رود. بازرگان بر برخی خصوصیت های زیست اجتماعی ایرانیان متمرکز شده است، او زیستن در سرزمینی پر حادثه را که در بهترین حالت حکم قهوه سر راهی داشت منشعه چیزی دانسته که خود در قالب سازگاری روحیه ایرانی مفهوم سازی کرده است. بعدها کسانی مانند سلاسی این فکر را ادامه دادند. از نظر سلاسی نیز نوعی روح جهانگرایی در میان ایرانیان وجود دارد که به صورت پذیرش و جذب فرهنگ های دیگر و بیگانه نشمردن آنها و همدلی و سازگاری با آنها ظاهر می شود. وی برای این مدعا به شواهدی از زبانها، دینها، ساختهای سیاسی، ادبیات، هنر و معماری ایرانیان توسل جست است. سطودنی ترین کیفیت رفتار ایرانیان، مهربانی آنها با بیگانگان، پذیرا بودن و حمایتی که از بیگانگان می کنند و مهمان نوازی همگانی آنها و بردباری آنها است. از نظر سلاسی ستیز با فرهنگهای دیگر خصلت ذاتی و همیشگی فرهنگ ایرانی نبوده است اما بازرگان تا این درجه روایت مثبت از مفهوم سازگاری ندارد وی حتی گاه این مفهوم را با واژگانی بقایت هجوآمیز توضیح داده است از این گذشته به نظر بازرگان زندگی معیشتی و راه درآمد غالبا روستایی و ایلی ایرانیان به علاوه عواملی مانند استبداد ریشهدار دار، و نظایر آن، منشع خلقیاتی مانند تملق، دروغ، درویی، شلختگی و بیبرنامگی و دم شده است. بعد از انقلاب هم تولید این گونه آثار ادامه یافت. صادق زیبا کلام کوشیده است برای این پرسش که ما چگونه ما شدیم، پاسخ پیدا کند. کازم علمداری با این سوال مواجه است که چرا ایران عقب ماند؟ و قرب پیش رفت. احسان نراقی به جامعه شناسی خودمانی در کتاب نقش ما در آینه پرداخته است. مسئله او نیز این است که چرا درمانده این عرفان قانعی را توسعه نیافتگی جامعه ایران را با تاکید بر آنچه چه فردگرایی ایرانی نامیده توضیح داده است. فراستخواه درباره سیکل ذره وارگی توده وارگی مردم این سرزمین و آثارش در رفتار جمعی بحث کرده است. و ایزدی نیز به جامعه شناسی خلقیات ایرانی و علل عقب ماندگی پرداخته است. در دومین متخل چنان که گفته شد، ریشه های رفتار شناسی ایرانی از حیث ساخت اقتصاد سیاسی، وضعیت مالکیت، ساختار طبقاتی و موانع رشد سرمایهداری بررسی شده است. مانند آثار لمتون، اشرف، همایون کاتوزییان و اثر آیرن و برانستون درباره جاده ابریشم و کار انساری و توسلی درباره ساختار طبقاتی ایران و اینکه مثلا طبقه متوسط در ایران چه ویژگی‌ها و روحیاتی دارد و چه آثاری بر آن مترتب می‌شود. سریع القلم امر اقتصادی را سایه انداز فرهنگ ایرانیان و از جمله فرهنگ سیاسی آنان یافته است. به نظر او برخلاف حوزه انگلوساکسونی که به سبب داشتن اقتصاد داد و فرهنگ مسئولیت فردی و تکثرگرایی رواج یافته در حوزه زندگی ما چنین اقتصادی نهادمند نشده و در نتیجه روحیات و فرهنگ سیاسی ما نیز متفاوت است. ساخت دولت و جامعه شناسی تاریخی و سیاسی در ایران مدخل سوم در این زمین است. قدیمی ترین مباحث از این قبیل را می توان در مقدمه ابن خلدون یافت. اجلالی به بنیان حکومت قاجار پرداخته و نظام سیاسی ایلی را در کنار دیوان دیوانسالاری مدرن بررسی کرده است. بهنام و راسخ مقدمهی بر جامعه شناسی ایران فراهم کردند. آبراهامیان ایران بین دو انقلاب مشروطه و بهمن 57 را بررسی کرده. فران و از همگسستگی اعتلاف های سیاسی در طول تاریخ ایران پرداخته است. همایون کاتوزیان درباره جامعه شناسی تاریخی ایران و بشیریه درباره جامعه شناسی سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی ایران بحث کردند. غازی مرادی خودمداری ایرانیان را بررسی کرده. تضاد دولت و ملت و دیگری شدن دولت از دیگر مباحث در این زمینه بوده است. منابع تاریخی، سفرنامه و خاطرات، مدخل چهارم برای این بحث هستند. از قدیمیترین سفرنامه ها در سده 17 میتوان به سفرنامه برادران شلی اشاره کرد. دو برادر سر آنتونی و سر رابرت از نوجبای انگلستان سده 16 بودند که در دوره استعمار مقارن ایام سلطنت شاه شاهباس صفوی، با اهداف تجاری، سیاسی و مذهبی در رأس نمایندگی انگلیس به ایران آمدند. آنتونی تحصیل کرده آکسفورد بود. در این سفرنامه تصویری تعارض آمیز از رفتار ایرانیان از شاه تا مردمان عادی برساخته که یک طرف آن بیباکی و طرف دیگر آن آمادگی قتل و کشدار وسیع یک سوی آن دزدی و سوی دیگر آن میهمان است. بعدها آوانسخان مساعد السلطنه از خاسان دربار قاجار در دوره ناصرالدین شاه این سفرنامه را به فارسی ترجمه کرد در سفرنامه های بعدی شواهدی از توصیف و قضاوت در باب خلقیات ایرانی به چشم می‌خورد که در جای خود به لحاظ نقد درونی و بیرونی میتواند بررسی شود الهاریوس آلمانی در سال 1654 میلادی سفرنامه ای نوشته و در آن به بسیاری از آنچه به کل خلقیات عمومی نیز تعمیم می دهد خورده گرفته است. برای مثال گفته برای آنان عیب نیست اگر به آنها گفته شود دروغ می گویی. پسر های محصل اگر مرتکب خطایی شوند مانند ما با ترکب پشت آنها نمیزنند بلکه با چوب دستی کتک میخورند احتمال میدادیم تمام این حرفها کلک و هیلۀ ایرانی جماعت باشد که از این داستانها بسیار در چنته دارند هنگام راه رفتن نظر را به هم میزدند و بین یکدیگر میلولیدند به طور کلی ایرانیان در مراسم عمومی نظم و ترتیب را رعایت نمی‌کنند از دیرباز رسمان ها این بوده است که چند همسر داشته باشند، مردمانی خشن هستند که به خلافکاری گرایش دارند، از این جهت به مجازات خفیف اهمیت نمی دهند و با خشونت در برابر شخص خاطی عمل می کنند. ژان شاردن در نیمه دوم سده 17 میلادی مقارن سلطنت شاه عباس دوم و شاه سلیمان صفوی بیش از 12 سال در ایران میزیسته و دو زبان ترکی و فارسی را یاد گرفته است. او نیز مشاهدات خود را که به طور عمده از خوااس بود، اغلب با ارزیابی منفی به عموم مردم این سرزمین پهناور تعمیم داده است. برای مثال گفته به نیکوبد آینده توجه زیاد ندارند. دم را غنیمت می شمارند، غم فردا را نمی خورند و بر این اعتقادند سر هر کس همان میرود که پروردگار در ازل مقدر فرموده است. به طبع مردمانی دلیر، جنگجو و پرخاشگر هستند. القاب عناوین و تعارفاتی که ایرانیان در اقسام نامنگاری ام از مکاتبات رسمی و جدی و واقع نویسی به کار می برند بسیار بار دامن دارتر و سنجیده تر از عبارات و کلماتی است که در تعارفات زبانی در میان می آورند. سفرنامه اولیویه یکی دیگر از این منابع است، موسیو اولیویه عضو حیئتی فرانسوی بود که در اوایل عصر قاجار مقارن با انتقال قدرت از آقا محمدخان به فَتَلی شاه به ایران آمده بود وی علاوه بر کار سیاسی حرفه پزشکی داشت و این امر امکان مراودات گستردهای را با مردم برای وی فراهم می‌کرد بخش ایران سفرنامه ای او را محمد محمدطاهر میرزا پسر اسکندر میرزای ولیعهد به فارسی ترجمه کرده است این فرانسوی نیز در مجموع تصویری منفی از روحیات و رفتار مردم ایران با شواهد محدود و تعمیمهای نامحدود به دست داده است از جمله اینکه ایرانیان از عثمانیان پوشیده دلتر مکارتر خودجاکنتر و مزاحگوتر هستند در شکستن پیمان و دروغ آموختهتر باشند چون بر تملق و چابلوسی عادت کردند، در صورتی که طمع منفعتی داشته باشند فروتنی به قایت نمایند اما در آینش کم نیست تصاویری از بخش قابل توجهی از الگوهای آموخته رفتار ایرانی که حداقل در آن دوره وجود داشت مانند اینکه از بزرگ و کوچک و عالم و جاهل هیچ کاری را بدون اختیار ساعت سعد و استشاره و تصدیق اهل نمی کنند. با زنان خود به حقارت و بی‌اعتنایی رفتار کنند، اعم از اینکه شیفته زنان خود باشند یا بیمیل در هر صورت غیرت و رشک بیاندازه درباره آنها بکار برند. با کمی شبه در رفتار زنان از غضب دیوانه شده و سر هر چیز بسیار قلیلی که برخلاف رضای مرد باشد زنان را به ضربات بیازارند و به قلیل مشکلی متلقه سازند. یک جا با خارجی مذهب قضا نخورند و ظرفی که مسیحی یا یهودی و مجوس در آن قضا بخورند در آن ظرف تعام نکنند. چیزی که هست او به این موضوع ذات باورانه نمینگرد و روح ایرانی را چنین و چنان نمی داند بلکه به عامل اشاعه بسیار قائل است و راز سبقت گرفتن ترکیه از ایران را در این می بیند که آنان مجاور اروپا بودند و ایرانیان نبودند اگر مانند ترکان عثمانی با فرنگستان همسایه بودند و اگر بازار ایران به سهولت می توانست با فرنگستان مراوده کند و اگر افراد ملت ایران را مانند ترکان عثمانی قدیم ممکن بودی به مملکت اروپا سفر کنند حال مدتی بود که ایران هم مانند فرنگستان شده بود اگر ایرانیان همسایه فرنگستان بودند حال مدتی بود که نهایت ترقی و آگاهی را یافته بودند موریتز فون کتبوه آلمانی از جمله غیر ایرانیان است که مقارن ایام عباس میرزا به ایران آمد و در گزارش خود در این حال که ذوق و حال ایرانیان و استعداد یادگیری و تجدد برخی نخبگان ایرانی را وصف می‌کند از شیوع برخی خلقیات منفی در مقیاس جامعه ایران سخن می‌گوید ایرانیان به داشتن زوق ادبی خیلی اهمیت می‌دهند نجات علی بیک، برادرزاده ی اسگرخان که با امویش به پاریس رفته، بی نهایت خلیق و مهربان است. در زبان فرانسه یاد طولایی دارد، از مهر و صداقت و حجب و حیا که کمتر در ایرانیان دیده می شود، محبوب تمام اعضای سفارت شده است. یاکوب ادوارد پولکنیز درست در نیمه قرن 19 میلادی دوره قاجار به ایران آمد. وی پزشک و جزو استادان اروپایی دارالفنون بود از نخستین استادانی بود که به دانشجویان ایرانی آموزش پزشکی در سطح بالینی مانند عمل درآوردن سنگ مسانه و آموزش آن یا فعالیت در مقابله با شیوع وبا داد اما متاسفانه خاطره چندان خوبی از روحیات این مردم نداشت در مقدمه کتابش به عنوان ایران و ایرانیان می نویسد هنگامی که در سال 1851 به ایران آمدم، سخت مفتون جامعه ایرانی و طرز زیبای تکلم و ریزه‌کاری‌های محاوره ای آنان شدم و رفتار مؤدبانه مردم تربیت شده مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد. متاسفانه بعدها دریافتم نیرنگ و دروغ و فریب در پس این رفتارهای انعطاف پذیر پنهان است. نفرین و ناسزا از مشخصات ایرانیان است. معمولا هدف ناسزا خود شخص نیست بلکه خانواده او به خصوص پدر، مادر و یا قبور گذشتگان وی است. زیرا بر حسب مفهومی که زندگی خانوادگی دارد فش به خانواده بسی ناگوارتر از دشنام به خود مخاطب است. رایشترین آنها عبارت است از پدر سوخته و پدر سگ. اغلب فوشهایی هایی که برای زنان به کار میرود رکیک است و این کلمات قبیه را اغلب از دهان کودکان خردسال میتوان شنید که بر معنای آن نیز وافق نیستند و به تقلید از بزرگترها به کار میبرند روزی صدر ازم از من پرسید آیا در اروپا هیچ خویشاوندی ندارم پس از آنکه به پرسش او پاسخ مثبت دادم با ریشخند از من جویا شد که پس نکند با قجران خیش و قومی. صاحب منصبان از هیچیک از فنون نظامی مطلع نیستند. یک پسر بچه 16 ساله از مدرسه بیرون می آید و بر اثر اعمال نفوذ، رشوه دادن و خریدن و یا ملاحظات خانوادگی به منصب سرتیپی می رسد. کار مهم این صاحب منصبان این است که مزد سربازان را به جیب بزنند و وجوهی را که باید صرف خوراک و پوشاک سربازان شود، بالا بکشند. خانم کارلا سرنا مسافری از ایتالیا بود که در سومین دهه سلطنت ناصر مقارن وزارت خارجه میرزا حسین به ایران آمد. روایت او از ایرانی سیاه و سفید نیست و حسب مورد رفتارهای خوب و بد را دربر میگیرد. مثلا اینکه اگر آداب و رسوم و بخصوص عقاید اقاید مذهبیش مورد احترام قرار گیرد مطلقا دشمن اروپایی نیست. گذاف گوست اما هیچگاه موزی نیست. از صفات ایرانیان دادن صدقه و احسان به دیگران است. به طب مهمان نواز، خونگرم، ملایم، خلیق و مهربانند. بینهایت نهایت تکه پاره و نوار و نخ مشاهده می شود که به عنوان دخیل به نهالهای کوچک گره زدند. این دخیلها نشانه نزوراتی از قبیل دادن هدیهای به مسجدی، هر داخت صدقی یا زیارت مرقدی مقدس است که مسافران وعده دادند در صورتی که سلامت به مقصد برسند، ادا کنند. و سرانجام این که اگر واجد عیوبی هستند، این هنر را نیز دارند که بتوانند معایب خود را زیر ظاهری دل پسند، پنهان کنند. کونت دوگوبینو، سه سال، از سال 1862 تا 1864 در دوران سلطنت الدین شاه وزیر مختار فرانسه در ایران بود روایت او شاید به سبب روابط با افراد و گروههای خاص و شاید هم بر اساس پیشفرضهایش و سرانجام به علت اینکه فرهنگ و جامعه ایرانی با انواع ضعف و مشکل دست به گریبان بود در برگیرنده شواهد منفی بسیاری است در میان هر 20 نفر ایرانی که با این خلوص نیت ظاهری اظهار تقدس و ورع نماید، مشکل توان یک نفر را دریافت که باتنن همچون خلوص نیت و قدس و ورعی داشته باشد. گویی ملت بزرگ به موجب یک نوع پیمان معنوی یا مرموز موافقت کرده است، متفقاً این ریاکاری را بپذیرد. این حس ریاکاری باعث شده اگر انسان با پنجاه نفر ایرانی صحبت کند ملاحظه کند همگی مخلص و بنده و چاکر انسان هستند ولی همین که انسان رویش را برگرداند اگر به وی ناسزا نگویند قطعا احساسات خوبی نسبت به او ندارند به وقت اهمیت نمی دهند و مثلا اگر گفتید من اسب به ملاقات شما می آیم می توانید از ساعت سه تا 6 بعد از ظهر هر وقت خواستید به ملاقات دوست خود بروید. تمام صحبت‌های آنان مربوط به گذشته است. هل لحظه دم از بزرگان و پهلوانان گذشته میزنند و به وجود آنها افتخار می کنند و به همین ترتیب همواره فکرشان معطوف به گذشته است. تمام خصالی که یک نفر دلال باید داشته باشد در ایرانی جمع است. زرنگی، تملق و غیره. اصولاً تملق و چابروسی را دوست می‌دارند. اگر کسی به شاعری یا نویسنده انتقاد کند، در نظر ایرانیان قابل سرزنش خواهد بود و حتی مورد نفرت قرار خواهد گرفت. برخلاف بازرگانان اروپایی آنها خود را ملزم نمی دانند یک حواله یا برات را در موقعی معین بپردازند و اگر تاجری براتی را بلا فاصله پس از رویت پرداخت کرد، یک امر استثنایی است. و سایر شواهد مانند تعیش در تمام عمر برای خانم های ثروتمند و طبقه اقنیا. توسل به واسطه تقدیم رشوه برای دریافت پست های دولتی. خانم دوراند همسر سر دوراند یکی از رجال انگلیسی در هند بود که چند سال پیش از مشروط اواخر دهه هفتاد شمسی و سالهای پایانی قرن 19 هم به ایران آمد. در سفرنامه او نیز طیفی از صفات مثبت تا منفی درباره ها به چشم می‌خورد از صفت مهربانی تا اینکه مبادله پیشکشی از سنن این مملکت است و هیچ مسافری نمی‌تواند بدون داشتن هدایایی معادل پیشکش‌هایی که به او داده می‌شود مسافرت کند این سنت موجب شود، خزینه مسافرت به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد و اینکه مستخدمین ایرانی در اردوگاه کاملا خوش اخلاق هستند اما در خانه خشن و بیتربیت هستند اس جی دبلیو بنجامین اولین سفیر ایالات متحده ای آمریکا در ایران از سال 1261 شمسی برابر با 1883 میلادی به تهران آمد و بیش از دو دهه در ایران بود او در سفرنامه خود از روحیه شاعرانه و اسطور ایرانیان در تمام کارهایشان سخن گفته است. در این آثار برخی تصویرها سیاه و برخی خاکستری هستند. از نوشته اهل سیاست هم که بگذریم، آثار اهل علم البته متفاوت است. ادوارد بران شاید به دلیل روابطش با قشر خاصی از فرهیختگان ایرانی در کتاب یک سال در میان ایرانیان روایت مثبتی از آنان به دست داده است. از نظر ادب و مهمان نوازی از همه ملتهای دیگر جلو هستند. حضور ذهن عالی و گویی ظریف آنها آدم را به حیرت وامی دارد. و در مقایسه با آن تصویر هوگا گروته آلمانی را داریم که در سال 1907 پس از مشروطه به ایران آمد. به نظر او با وجود تصویب قانون اساسی تشکیل مجلس و آزادی های فراهم آمده مشکل روحیات مردم همچنان به قوت خود باقی مانده و برقرار است. کوچکترین اثری از حس وظیفه شناسی مشاهده نمی اینها فقط به فکر پول هستند همگی بدون استثناء از زیر کار در می روند. همه از آزادی حرف میزنند ولی در اسب به فکر منافع خود هستند. هیچکس حاضر نیست برای آزادی کوچکترین قدمی بردارد. تاریخ نگاری هایی که از آنها در بررسی موضوع استفاده می شود نیز فراوانند. مانند تاریخ ایران کمبریج، تاریخ ایران، اثر سکایا و دیگران، تاریخ هخامنشی اثر برایان، تاریخ ساسانی اثر کریستنسون، تاریخ قرون نخستین اسلامی اثر اشپولر، تاریخ صفوی از سیبوری و تاریخ قاجار از فلور. ملیت، قومیت و دین در ایران و هویت ایرانی مدخل پنجم است. زرین کوب به چالش‌های هویت ایرانی در پایان اصر ساسانی و ورود اسلام به ایران پرداخته. شیخاوندی، دیباج، گودرزی و پیران از سیر تکوین و تنفیز هویت ایرانی و پرسش‌های ایرانی بودند و هویت ملی جامعه ایران بحث کرده‌اند. احمدی گرایی را در مقایسه با ملیت بررسی کرده سلاسی به فرایند تاریخی تطور برخی اقوام ترک و عربتبار در حوزه فرهنگ ایرانی توجه کرده و علیخانی رویکردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی به هویت و بحران هویت در ایران داشته است. آثار متعدد دیگری نیز در این حوزه منتشر شده است. مکی، ستاری، یار محمدی، گروه تحقیقاتی سیاسی اسلام سنی اجلال، افتخارزاده، سربندی، ولایتی، حسینی، حقدار، رزاقی و فوزی توسرکانی ششمین مدخل از بحث‌های مربوط به بررسی خلقیات ایرانی، بررسی‌های مربوط به اسطوره‌ها، میتولوژی، آیین‌ها و فرهنگ‌های ایرانی است. فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم از دو بخش فولک یا مردم و لور یا دانش تشکیل شده است. مردم شناسی فرهنگی این موضوع را بررسی علمی می کند. فرهنگ مردم حوزه وسیعی از شیوه های عمل، رسوم اخلاقی، سنت های فکری و گفتاری، زربلمسل ها، رفتار، عادات و باورهای آنها و نیز شعائر و تشریفاتشان را دربر بر در این مدخل نیز کارهای صورت گرفته است مانند بررسی های مهداد بهادر، بررسی مربوط به فرهنگ آمه ایرانی از احمد سلطانی، آین های گذر در ایران اثر اسدیان، آین جوامردی از کربن، تصویر زن در فرهنگ ایرانی از جمالزاده، فرهنگ موسیقی ایرانی از وجدانی، جشنهای ایرانی از فاطمی، پوشاک ایرانیان اثر متین و قالیشویان اثر بلوکباشی. ادبیات و معارف ایرانی، امثال و حکیم، آموزوش و پرورش ایران و فرهنگ عامه از دیگر منابعی هستند که در مدخل هفتم میتوان از آنها برای شناخت خلقیات و روحیات ایرانی یاری گرفت. نمونه ای از این کار را روح‌الامینی درباره نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی و عبد حقیقت درباره ارزشهای عرفانی در ایران انجام دادند. انجوی شیرازی درباره فرهنگ مردم و محمد جعفر محجوب در باب داستانهای فولکلور پارسی بحث کردند. مدخل هفتم جامعه شناسی باورها، نگرشها و رفتارها، روانشناسی اجتماعی و نظام شخصیت ایرانی است. در روانشناسی اجتماعی، تأثیر گروه های اجتماعی و روابط و های حاصل از آن بر افراد، و اجتماعی شدن و رفتار متقابل آنها و مسائلی چون تعارض و سازگاری، پرخاشگری، پیشداوری و جز آن بررسی می شود. برای مثال، شیخ الاسلام رواج روحی مبالغه گرایی در میان مردم را بررسی کرده و بیرامی و همکاران درباره برخی مسائل کاربردی در حوزه روانشناسی اجتماعی بحث کردند. محسنی نیز طی پیمایشی به بررسی آگاهی‌ها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران پرداخت است. کاری که آغازگر آن اسدی توسی در دهه 50 شمسی بود و در دهه 80 نیز با پیمایش ملی ها و نگرش های ایرانیان دنبال شد. محسنی همچنین پیوندها و نیروهای اجتماعی در ایران را بررسی کرده. چلبی به بررسی نظام شخصیت در ایران پرداخته. وی همچنین چارچوب مفهومی پیمایش ملی گفته را فراهم کرده است. در مدخل هشتم برخی آثار به موضوع خاصی از نگرش‌ها و رفتارها متمرکز شدند. برای مثال فخرایی و پیران درباره وضعیت مشارکت اجتماعی کار کردند. سام آرام همین موضوع را به طور خاص در روستاهای ایران بررسی کرده فرهادی به فرهنگ یاریگری در ایران و کریمیان به فرهنگ آبیاری پرداختند. زاده میزان تعلق اجتماعی گروه های سنی مختلف محلی تهران را بررسی کرده. چینیچیان به بررسی مردم باورها و رفتار زنان محلی آذربایجان تهران در مورد بلوغ پرداخته. رزا قولی نخبکشی را بررسی جامع شناختی کرده. سلاسی به تحلیل رویکرد جهانگرایان در رفتار، فرهنگ و تاریخ ایرانیان پرداخته. محسنی و صالحی درباره رضایت اجتماعی در ایران بررسی کرده اند و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مجموعه مقالات نخستین همایش راهکارهای توصیع فرهنگ شهروندی در زمستان 1381 را منتشر کرده است. نهمین مدخل در این زمینه بحث آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات است. برای مثال، منوچهر محسنی خودکشی در ایران را بررسی کرده. علیرضا محسنی تبریزی درباره کج‌رفتاری و وندالیسم در ایران تأمل کرده و اینکه چه عواملی سبب می شود برخی سندلی های اتوبوس را خراب کنند یا در های عمومی شعار بنویسند. مساواتی آذر درباره انحرافات بحث کرده. انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری دانشگاه علامی تبا و شهرداری تهران در سال 1375 نخستین همایش ملی طرح مسائل جامعه شناسی ایران را برگزار کردند. میری آشتیانی مقدمهی بر آسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران فراهم کرده. طی همایشی ملی آسیبهای اجتماعی در ایران بحث شده. فرجاد، به آسیب شناسی کجرویهای اجتماعی پرداخته و سخاوت درباره عوامل ساختاری مؤثر بر کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشورهای جهان سوم با تکیه بر ایران بحث کرده است. جامعه شناسی شهری روستایی و جامعه شناسی نهادها و قشها و سنوف اجتماعی مدخل دهم برای جستار در بحث حاضر است. نمونه مباحث درباره شهرنشینی در ایران را در حسامیان و دیگران، توفیق لطیفی و دعاگویان می‌توان سرآب گرفت. خسروی و ازکیا به جامعه شناسی روستایی پرداختند. محسنی درباره ساختار خانواده در ایران بحث کرده است. درباره زیست محله‌ها و اجتماع محله‌ای در ایران نیز بحثهایی شده است. از جمله آثار تکمیل همایون، فلامکی، حبیبی نقیزاده، باقری و سلطانزاده در باره های سنفی و اخلاق کار در ایران فویوزات و گیویچیان بحث کردند. درباره جامعه شناسی های مختلف اجتماعی ایران نیز بررسی صورت گرفته است مثلا در مورد زنان، جوانان و گسسته نسل چالش‌های سنت و تجدد شکلگیری نخبگان جدید و آنچه از رهگذر تحولات فرهنگی در جامعه ایران و فرایندهای توسعه در دنیای خلقیات و روحیات ایرانیان پدید میآید مجموعه مباحثی در مدخله یازدهم هستند از نخستین آثار در این زمینه اثر پیشگفتهٔ زینالعابدین مراقهای است فراستخواه به سرآغاز نواندیشی معاصر از جمله در ایران سالار کسرائی به چالش سنت و مدرنیته از مشروطه تا 1320 و زیبا کلام به ریشه یابی نوسازی در اصر قاجار پرداختند. میرسپاسی از مدرنیته ایرانی بحث کرده. کچویان کشاکش گفتمانهای هویتی ایرانی را با تجدد و مابعد تجدد بررسی کرده و نیز با پرسش ایرانی ها چه رویایی در سر دارند موضوع را دنبال کرده است. به نظر فوکو ایرانیان در جهانی که آن را به قایت بیروح مییابند روح معترض خود را عیان و بیان میکنند رجایی مشکله هویت ایرانیان امروز را به میان آورده رفیع پور به هم آغوشی توسعه و تزاد در ایران و موانع توسعه علمی در ایران پرداخته توحید فام موانع توسعه فرهنگی را بررسی کرده آزاد ارمکی به پاتوق های روشنفکری و حبیب به کافیشاب ها پرداختند موتی نقش نخبگان ایرانی را در فرایند نوسازی با نخبگان ژاپنی مقایسه کرده ازغندی نیز درباره نخبگان سیاسی ایران معاصر بحث کرده است گروه تحقیقات سیاسی اسلام از مؤلفه‌های های تجدد در ایران فراستخا از دو قرن چالش توسعه و دموکراسی در ایران و جهان بگلو از موج چهار روم روشنفکری بحث کردند آزاد ارمکی به جامعه شناسی تغییرات فرهنگی در ایران، عبدی و گودرزی به تحولات فرهنگ عمومی و اسماعیلی به تغییرات سبک زندگی و تحولات نسلهای اجتماعی در ایران پرداختند.